شب ششم قبل از شروع جلسه یکی از تجار اهل سنت به جناب واعز گفت زودتر خدمت رسیدم تا مطلبی را به محضرتان عرض کنم صحبتهای شما در این جلسات در روزنامه های محلی چاپ می شود و اده بسیاری را مجذوب خود کرده است ما تا کنون چون این و استدلال را نشنیده بودیم شب گذشته که از اینجا رفتیم به آقایان علما شدیدن اعتراض کردیم که متاسفانه منجر به دلخوری شد میخواستم قبل از شروع مجلس این جریان را خدمتتان گفته باشم تا جوانه به کار را مد نظر داشته باشید حضرت آقا مایل هستیم ادامه صحبتهای دیشبتان را بشنویم. شب گذشته اثبات کردیم که مستاق آیه 29 سوره فتح خلفا نیستند. اما الان میخواییم ثابت کنیم که صفات مذکور در این آیه مختص امیر مومنان علی علیه السلام است. این همه آیات قرآن را درباره علی نقل کردید بس نیست که حالا میخوایید این آیه را هم بهزور در وصف علی تفسیر کنید؟ باعث است که بعد از این همه جلسهی که با هم داشتیم چون این قضاوتی را در حق من می‌کنید. مگر شعن نزول آیات قرآن به اختیار من و شماست که چون این میگویید. تمام این مطالبی که می در تفسیرهای خودتان آمده. اگر به کتابهای خودتان مراجعه می این حرف را نمیزدید. ما برای اثبات حقانیت مذهبمان نیازی به جعل و زور نداریم. شافعی می تعجب می کنم از علی، دشمن به خاطر دشمنی با او و دوست از ترس دشمن او فضائلش را نقل نمیکرد. کرد. با این حال تمام کتابها از فضائل او لبریز است. ما منکر فضل علی نیستیم. استدعا می کنم بفرمایید که چرا این آیه اثبات راه ما را نمی کند. قبل از اینکه پاسختان را بشنوید این سخن محمد ابن یوسف گنجی شافعی را بشنوید که میگوید 300 آیه از قرآن در شعن علی نازل شده است او می نویسد علت اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم علی را تشبیه به نوع کرده است این است که او اشداء علل کفار بود و نسبت به مؤمنان مهربان بود همچنان که خداوند متعال در قرآن او را به این صفات وصف کرده است و اما جناب شیخ والذین معهو را در وصف ابوبکر دانستند شب گذشته عرض کردم که ابوبکر به صورت تصادفی با پیامبر همراه شد البته حتی اگر این تصادف را هم در نظر نگیریم همراهی پیامبر برای چند روز قابل مقایسه با همراهی دائمی و مادام العمر نیست علی از دوران توفولیت همراه نبی مکرم بود و توسط ایشان تربیت شد. آن زمانی که خلافای سگانه شما بط می پرستیدند، علی با رسول خدا همراهی می کرد. او اولین مردی است که به پیام بر ایمان آورد در حالی که فقط سیزده سال داشت. این که علی سبقت در ایمان داشته صحیح است. اما لطفا این را هم بگویید که ایمان یک پیر ورزیده بالاتر از ایمان یک طفل نابالغ است این گفته شما باعث تعجب است آیا به نظر شما ایمان علی در همان سن به میل و اراده خودش بوده یا در پاسخ به رسول خدا صورت گرفته مسلما به دعوت پیامبر بوده آیا رسول خدا نمیدانسته که بر طفل نابالغ تکلیفی نیست انسان فهیم میداند که پیامبر آن حضرت را لایق میدانسته و الا چنین کاری را نمیکرد اتفاقا این مسئله مساله میتواند عظمت امیرالمومنان را نشان دهد ملاک پذیرش ایمان بلوغ عقلی است نه بلوغ سنی ایمان علی در کودکی نشانه کمال عقل اوست زیرا ابلاغ پیام الهی به یک خردسال در شن پیامبر نیست همین نکته را پیامبر نیز به عظمت یاد میکرد و خود امیر مؤمنان علیه السلام نیز سبقت در ایمان را از فضائل بارز خود معرفی میکرد از محمد بن سعد نقل شده از پدرم سعد بن ابی وقاس پرسیدم آیا ابو اولین مسلمان است؟ گفت نه قبل از او پنجاه نفر اسلام آوردند ایمان امیر از فطرت بود ابن عباس میگوید به خدا قسم اهدی از افراد این امت بجز علی به خدا ایمان نیاورد مگر اینکه قبلا بود پرست بود در اینجا حدیثی از رسول خدا را برایتان میگویم تا خود به بی اساس بودن حرفتان پی ببرید آن حضرت فرمود اگر ایمان علی با ایمان امت مقایسه شود ایمان او بر ایمان تمام امت تا روز قیامت برتری دارد اگر سخنان علما را در خصوص ابو بک می دیدید این چونی نمی گفتید شما نیز اگر به جای قول برخی افراد متاسب به سخنان علمای منصفتان مراجعه می کردید حرف مرا تصدیق می کردید ابو جعفر اسکافی در کتابش می نویسد ما فضل صحابه را انکار نمی کنیم واقعیت آن است که احدی از آنان بر علی برتری ندارد پسر امام احمد بن حمل میگوید از پدرم جویای فضل صحابه شدم او ابوبکر و عمر و عثمان را نام برد و یادی از علی نکرد از وی پرسیدم پس علی چه گفت او قابل قیاس با هیچ یک از صحابه نیست او از اهل بیت رسالت است نکته دیگری را در اینجا به عرض برسانم تا بیشتر در اعتقاداتتان دقیق شوید به نقل از جابر ابن عبدالله، رسول خدا در حضور مهاجران و انصار، خطاب به علی فرمود یا علی، اگر بنده ای عبادت خدا کند و عبادتش را کامل کند، سپس در فضیلت تو و اهل بیت تو شک کند، همانا جایگاه وی آتش دوزخ است. برای اثبات برتری حضرت امیر مؤمنان دلایل زیادی را در حافظه دارم ولی به خاطر مقتضای بحث، واقعی جنگ خندق را عرض می کنم. پس از اینکه امر ابن عبد وود به دست امام علی علیه السلام قرار شد، رسول مکرم فرمودند: "فضیلت ضربت علی در روز خندق از عبادت جن و انس تا روز قیامت برتر است." بر اساس این سخن ارزشمند، یک عمل امیرالمؤمنین علیه السلام از اعمال تمام صحابه برتر است. پس جایی برای مقایسه آن حضرت با دیگران باقی نمیماند. چون وقت نماز نزدیک است با ارائه یک دلیل قرآنی جلسه را موقتاً ختم میکنم. قرآن علی علیه السلام را نفس پیامبر نامیده است و سپس به همان علت که رسول خدا افضل الناس است علی هم افضل الناس است در این هنگام آقایان جهت عدای نماز جلسه را ترک کردند و پس از بازگشت ایشان و صرف چای بحث پی گرفته شد عزت آقا چرا حضرت علی کرملا لا در شب هجرت با رسول الله همراهی نکرد و در مکه ماند؟ علت این که امیر مؤمنان در شب هجرت همراه پیامبر نبود، کارهایی بود که باید انجام میداد. امانتهایی که از مردم دست پیامبر سپرده شده بود، باید توسط امین پیامبر یعنی علی برگردانده میشد. همچنین خاندان پیامبر و بقیه مسلمانان باید به مدینه هدایت می شدند، و از همه مهمتر خوابیدن در بستر پیامبر جهت حفظ جان آن حضرت نیز جزو برنامه های الهی و بر عهده نفس پیامبر یعنی علی بوده است. اگر ابو به علت همراهی با پیامبر سانی اسنین شده است، در همان شب یک آیه مستقل در شعن امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شد. خواهش می کنم جریان آن شب را مفسد بیان کنید. هنگامی که رسول خدا به امر حختالا هجرت به سوی مدینه را اراده فرمود، به علی علیه السلام دستور داد که در بستر ایشان بخوابد تا مشرکانی که خانه ایشان را محاصره کرده بودند متوجه غیبت رسول خدا نشوند. حضرت علی با رضایت کامل فرمان آن حضرت را اطاعت کرد. در روایت آمده در این هنگام از جانب خداوند متعال به جبریل و میکائیل خطاب شد، من در میان شما اخوت و برادری قرار دادم. کدام یک از شما حاضر است بقیه عمرش را به دیگری ببخشد؟ عرض کردند: امر است یا اختیار؟ فرمود: اختیار. پس هیچ یک از آنان راضی به این امر نشدند. خداوند متعال به ایشان فرمود: من بین علی ولی خودم و محمد پیامبر خودم پیمان برادری برقرار ساختم. پس علی زندگانی خود را فدای زندگانی فرستاده من کرد و در بستر او خوابید به زمین بروید و او را از شر دشمنانش حفظ کنید آن دو به زمین آمدند و جبرئیل به آن حضرت عرص کرد به به چه کسی مانند توست ای پسر ابوطالب طالب که خداوند از به وجودت مباهات می کند سپس این آیه بر پیامبر نازل شد و منن من یشری من نفسه و ابتقا امر از آت اللهه و به حال منصفانه قضاوت کنید. کدام یک از این دو برترند؟ کسی که جان خود را به خاطر پیامبر در معرض تیغ افراد توزی چون ابو جهل و ابو لهب قرار میدهد. یا آنکه دوسه دو سه روز با ترس و استراب در قار همراه پیامبر بوده؟ و اما مطلب دومی که جناب شیخ عبدالسلام گفتند اتصاف عمر به اشداء علل کفار بود قبل از بررسی این ادعا لازم است روشن کنید که در چه جهتی خلیفه دوم دارای رشادت و شجاعت بوده ایشان هم از لحاظ علمی در مناظره با کفار و هم از لحاظ عملی در میدان نبرد رشید و دلیر بوده اما از نظر علمی که به شهادت تاریخ هیچ گونه رشادتی از عمر نقل نشده. در دوران خلافت هر بونه مشکل علمی که برای خلافا پیش میآمد به دست علی امیر مؤمنان حل بی تعداد دفعاتی که خلفا در برابر مسائل علمی درمانده بسیار است. بعضی از محققان از ابو نقل کردند که مکررن می گفت مرا از این مقام معاف بدارید، زیرا من از شما بهتر نیستم و علی در میان شماست. و بیش از هفتاد مرتبه عمر گفته، لولا علی یون لحلک عمر. آیا این مطلب در کساف های هست؟ بله، همچنین از عمر نقش شده من زنده نباشم در میان امتی که تو یا اول حسن در میان آنها نیستی. و نیز می گفت، زنان عالم از اینکه مثل علی را بزایند عقیمند. با توجه به این مدارک و اصنات به ناچار باید قبول کنید که از خلیفه دومتان در مناظرات علمی هیچگونه رشادتی دیده نشده و ما در میدانهای جنگ نه تنها شجاعتی از وی گزارش نشده بلکه برکه از مبرخان نوشتن هرگاه در مقابل شجاعان لشکر دشمن قرار می فرار را برقرار ترجیح می‌داد کم لطفی را از حد گزرانده آیا تعبیر فرار؟ نسبت به ساحت خلیفه عمر که فخر مسلمانان عالم است بی و بی نیست خواهش میکنم مواظب به عرض زدنتان باشید اگر نقل تاریخ بی است این اعتراض را به مبرخان عالمان خودتان بکنید من از خودم چیزی را اضافه نمی کنم آنها نوشتند میگویم در کدام کتاب معتبر خلیفه را فراری معرفی کردند در بسیاری از کتابها این جریان ثبت شده حاکم و دیگران در کتابشان آوردند که خلیفه عمر از میدان نبرد فرار کرد شکست خورد و برگشت. در جنگ خیبر رسول خدا پرچم را به ابو بکر و سپس به عمر داد. آن دو با دیدن ساز و برگ جنگی یهود پا به فرار گذاشتند و موجب شکست لشکر اسلام شد. بعد از این واقعی ناراحت کننده رسول خدا پرچم را به امیرالمومنین داد و ایشان با وضع خارق ای نبرد را به سود اسلام خاتمه دادند. پس قضاوت منصفانه ما را وادار می کند که مصداق اشده و کفار را شیر بیشه شجاعت هیدر کرار بدانیم که در هیچ تاریخی از میدان جنگ فرار نکرد. همین معنا در آیه 54 و چار سوره مادنی شده. یا ای حلذین امنو من اگر تد منکم ان دینهی فسوف یاتیک الله بقوم یحبهم و یحبونه و عزته علی المؤمنین <سؤال> اعزه علی الکافرین شما میخواهید این آیه که در وصف تمام مؤمنان است را منحصرا در شعن علی کرم الله وجهه وصف کنید اولا من پیشنهاد می‌کنم اعتراضات خود را در قالب سؤال مطرح کنید تا وقتی جواب آن را شنیدید ابسورد نشوید ثانیا اگر این آیه در شعن همه مؤمنان است پس چرا همین مؤمنان از صحنه جنگ فرار کردند و رسول خدا را تنها گذاشتند انصاف نیست که صحابه را فراری بخانید مثل اینکه شما با یک دلیل و دو دلیل قانع نمیشوید. من آنها را فراری نخواندم بلکه علمای خودتان نوشتند که در جریان جنگ اهد غیر از اده معدودی تمام صحابه پا به فرار گذاشته و پیامبر را رها کردند. اصلا این آیهی که شما را در شن خلفا میدانید نمیتواند نمی تواند در شن کسی غیر از علی باشد. زیرا او بود که هیچگاه در جنگ پشت به دشمن نکرد. چگونه میتوان قبول کرد افرادی که پیامبر را در جنگ تنها گذاشتند محبوب خدا و رسول باشند علی امیرالمومنین انسان منحصر به فردی است که در جنگ احد با وجود اینکه نزدیک به 50 زخم و جراحت بر بدن مبارکش رسیده بود ثابت قدم ماند و از رسول خدا حفاظت کرد تا بالاخره جنگ را به نفع مسلمانان خاتمه داد آیا خجالت آور نیست که به صحابه بزرگ مخصوصا خلفای راشدین نسبت فرار دهید در حالی که این دو خلیفه بزرگوار همچون پروانه در اطراف رسول مکرم میگشتند و از ایشان محافظت میکردند. گویا شما تاکنون تاریخ نخوانده این جریانی را که نقل کردم مورد اتفاق تمام مبرخان است یکی دیگر از موارد فرار صحابه جنگ هنین است در این جنگ جز علی عباس ابو ابن حارث و عبدالله ابن مسعود تمامی صحابه فرار کردند علاوه بر این از حضرت رسول خدا نقل شده که علی به هیچ میدان نبردی وارد نشد مگر اینکه جبرئیل از راست و میکایل از چپ او را یاری می کردند و ابری بر او سایه می‌انداخت تا فتح و پیروزی نصیب او میشد. و اما در ادامه بحث قبل این حدیث را بشنوید ابن عباس میگوید روزی با پدرم نزد رسول خدا بودیم که علی وارد شد و سلام کرد. پیغمبر بلند شده و او را در آغوش کشید و میان دو چشمش را بوسید و طرف راست خود نشاند. پدرم عرض کرد یا رسول الله آیا علی را دوست داری؟ حضرت فرمود ای اموی بزرگوار به خدا قسم محبت و دوستی خداوند به علی بیشتر از محبت من به اگر شما حدیث رایت را شنیده بودید، قبول می کردید که محبوب ترین افراد نزد رسول خدا علی بود است و بس؟ عضرت آقا، اگر زحمتی نیست خواهش میکنم، حدیث رایت را شهر دهید. زمانی که لشگر اسلام خیبر را محاصر کرده بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ابوبکر و سپس اومر را به عنوان فرمانده لشکر برای فتح خیبر فرستاد که هر دو نفر با فرار خود زمینه شکست را فراه نوبردند. این مسئله باعث ضعف روحی سپاه اسلام شده بود. رسول اکرم برای قوت قلب سپاه فرمود به خدا قسم فردا پرچم را به کسی میدهم که حمله کننده بر دشمنان است و فرار نمی کند. خدا پیروزی را به دست او جاری می کند و او کسی است که خدا و پیامبر او را دوست دارند و او هم خدا و پیامبرش را دوست دارد چون صبح شد تمام صحابه های رزم پوشیده و خود را در معرض دید پیامبر قرار می‌دادند به امید اینکه این فضیلت بزرگ نصیب آنان شود پیامبر نظری به اصحاب کرد و فرمود کجاست برادر و پسر پسرعمویم علی عرض کردند یا رسول الله ایشان مبتلا به درد چشم هستند و توان حرکت ندارند رسول خدا سلمان را به دنبال علی فرستاد حضرت امیرالمومنین در حالی که چشم مبارکش بسته بود شرفیاب شد رسول خدا به ایشان فرمود ای اول حسن حالت چگونه است عرض کرد به الله خیر است چشم درد شدیدی دارم رسول مکرم چشم ایشان را به آب دهان خود متبرک نبود و برای ایشان طلب شفا کرد. مرض فوراً برطرف شد. سپس امیرالمومنین پرچم را به دست گرفته و قلعه خیبر را فتح کرد. از قول عمر نقل شده: "علمداری و فرماندهی جنگ را دوست نداشتم مگر در نبرد خیبر. من در آن روز مکررم خودم را به پیامبر نشان میدادم و این افتخار نصیب علی شد." با توجه به این روایت روشن می شود که مصداق اشداء و الکفار کفار روهما و بینهم فقط و فقط علی است جالب این است که بعضی از علمای خودتان هم به این نکته اقرار کردند محمد ابن یوسف گنجی شافعی از رسول خدا نقل کرده که فرموده هر کس می خواهد به آدم و نوح و ابراهیم نظر کند پس به علی نظر کند علی آن کسی است که خدا در قرآن او را به آیه الّذین معه أشدّاء علی روحما و بینهم توصیف کرده است. اما اینکه گفتید مقصود از روحما و بینهم عثمان ابن عفان است چون بسیار دلرح بوده یک ادعای بی و اساس است. اگر ناراحت نمی‌شوید با استفاده از منابع تاریخی مورد قبول خودتان ثابت میکنم که عثمان چندان دلرحم نبوده اگر در این نقل تاریخی فحش و بد و بیراه نسبت به خلیفه نیست مانعی ندارد در قضیه شورای 6 نفره عمر عبدالرحمن ابن عف با عثمان به عنوان خلیفه ویعت کرد مشروط بر آنکه به کتاب خدا و سنت پیامبر و طریقه شیخین عمل کند و بنی امیه را بر مردم مسلط نکند وقتی عثمان به خلافت رسید برخلاف سنت پیامبر و راه شیخین رفتار کرد و به عهد خود وفا نکرد چگونه برخلاف سنت پیامبر و سیره شیخین رفتار کرده؟ اولین قدمی که برخلاف سنت رسول خدا و طریقه شیخین برداشت بزل و بخشش های بیجاب بنی امیه و خیشانش بود مثلا خمس آفریقا را به مروان ملعون داد چارصد هزار درهم به عبدالله ابن خالد و صد هزار درهم به پدر مروان بخشید. عمل قبیه دیگرش روی آوردن فجار بنی امیه است که از جمله حکم ابن ابل آس و پسرش است که هر دو مترود و ملعون رسول اکرم بودند. دلیل شما بر ترد و لعن آنها چیست؟ اولا خداوند متعال صریحا بنی امیه را به عنوان شجره ملعونه معرفی فرموده. چنانکه که علمای خودتان در زیل آیه شست سوریه را نقل می کنند که رسول خدا در عالم خواب مشاهده کرد که بوزینه از منبر و مهراب آن سرور بالا می جبرئیل این آیه را آورد و خبر داد که آن بوزینهها ها بنی امیه هستند که بعد از تو خلافت را می گیرند و هزار ماه منبر و مهراب تو را تصرف می کنند امام فخر رازی در زیل این آیه قول آیشه را نقل می کند که به مروان گفت تو در صلب پدرت بودی که خداوند پدرت را لعنت کرد، پس تو بخشی از کسی هستی که خداوند او را لعنت کرده است، و نیز نقل کردند که مروان رانده شده رسول خدا بود که به دستور پیامبر از مدینه تبعید شده بود، این پدر و پسر در زمان ابوبکر عمر اجازه ورود به مدینه را نیافتند، ولی عثمان آنها را به دور خود جمع کرد و بیش از حد به آنها مهربانی کرد. واقعا کارهای عثمان بسیار عجیب است. از یک سو چنین افراد ملعونی که مطرود خدا بودند را به دور خود جمع می‌کرد و سوی دیگر صحابه پاک رسول خدا را شکنجه یا تبعید می‌کرد. حضرت آقا مگر خلیفه چه افرادی را تبعید و شکنجه کرده؟ به دستور عثمان عبدالله ابن مسعود حافظ و قاری قرآن و کاتب و و صحابی خاص رسول خدا را آنقدر زدند که دندههایش شکست و پس از سه روز از دنیا رفت. امار یاسر را مورد شتم قرار داد و به او اهانت کرد. با اینکه خودش از رسول مکرم نعف کرده که ایمان با گوشت و خون امار مخلوط شده. اعظم جنایات او تبعید و شکنجه ابوزر است. عثمان ابو اوزار ساله را به همراه دخترش سوار بر شطور برهنه کرد و به صحرای بی آب و علف روزه تبعید کرد تا عاقبت در همون جا از دنیا رفت؟ آیا اینگونه رفتار کردن با کسی که به اقرار علمای خودتان از قرب و منزلت بسیاری نزد رسول خدا برخوردار بوده با مهربانی جور در می آید؟ رسول خدا فرمودند خداوند متعال مرا به دوستی چهار نفر امر فرموده و خبر داده که نیز این چهار نفر را دوست دارد. عرض شد ای رسول خدا نام آن چهار نفر چیست؟ فرمود علی، ابوذر، مقداد و سلمان. عثمان این چون این شخص محترمی را با خاری تمام از مدینه اخراج کرد. او دستور داده بود که کسی به مشایعت ابوذر نرود، البته برخلاف خلاف دستور وی یه دی از بزرگان به مشایعت ابوذر رفتند که به همین خاطر مورد احانت و بازخواست قرار گرفتند. به عنوان مثال به جرم مشایعت ابوذر چهل تازیانه به عبدالله ابن مسعود زده شد. این آزار و عذیتها تقصیر معموران بوده و لا عثمان بسیار رحیم و مهربان بوده. مثلی هست که میگوید زما در مهربان تر دای خاتون. آقای عزیز تمام این آزارها به دستور سریح خلیفه بوده. عثمان به معاویه نوشت ابوزر را بر شطر پیر و بیپالانی سوار کن و به همراه مرد بدخویی که شب و روز او را براند به نزد من بفرست. معاویه نیز این کار را کرد. وقتی ابوزر به مدینه رسید گوشت رانهای او ریخته بود. خلیفه برای جلوگیری از فساد این کار را کرد. کدام فساد؟ ابوذر برای علی تبلیغ و میگفته؟ خودم از پیام شنیدم که فرمود علی خلیفه من است. او علنا خلفا را قاسب معرفی می کرد. اولا اگر عثمان به دنبال رفع فساد بود باید افراد کسیفی مثل مربان ملعون و ولید مصر را از خود دور میکرد. ثانیا آیا اگر کسی حرف حقی را بزند باید او را تأیید کرد؟ شاید ابوذر حدیث جل می کرده. رسول خدا فرمود، زمین کسی را صادق از ابوذر بر نداشته است و آسمان بر سر کسی که راستگوتر از او باشد سایه نیفکنده است. این را بدانید که اگر سابقه ای از دروغگویی در زندگی او بود، علمای شما آن را حتما نقل می کردند. واقعا کارهای شما عجیب است، از یک طرف می گوید به هر یک از صحابه می توان اختدا کرد و سوی دیگر با برجسته ترین صحابی رسول خدا اینجور بفرد می شود و... شما اصلاً متاثر نمیشوید. آیا طرفداری از علی تا این حد جرم تلقی می‌شود که کیفر آن تبعید و زجر کش شدن است ابوذر به اختیار خودش به روزه رفت ابو الاسود دوعلی میگوید از ابوذر علت خروجش را جویا شدم گفت مرا اجباراً به این منطقه تبعید می‌کنند و این خبر را رسول خدا به من داده بود و فرموده بود به خدا قسم عثمان خدا را در حالتی ملاقات خواهد کرد که گناهکار است. مستاق واقعی دلرحمی و شفقت آن شخص بزرگواری است که به پدر یتیمان معروف بود. بر خلاف عثمان در تقسیم بیت المال هیچ گونه تفاوتی قائل نمیشد. با وجود دشمنی ها و ادابتی که آیشه در جنگ جمل نسبت به آن حضرت از خود نشان داد پس از اتمام جنگ علی علیه السلام هیچ گونه اهانتی را نسبت به او روان نداشت به گونه که حتی خود آیشه هم در حضور زنان مدینه از مهربانی آن حضرت اظهار تشکر کرد و گفت فکر نمی کردم که علی تا این حد بزرگمنش باشد او حتی یک کلمه هم به روی من نیاورد با این همه دلیل و شواهد معلوم می شود که مصداق این آیه علیس نه ابو و عمر و عثمان این فرمایش شما از لحاظ ادبی قابل توجیه نیست زیرا در این آیه از لفظ جمع استفاده شده و نمی به یک نفر تعبیر شود اطلاق جمع بر فرد در زبان عرب و عجم بسیار متدابل است مثلا در آیه 55 و پنج سوره ماهده آمده انما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون و وهم راکعون در این آیه نیز لفظ جمع به کار رفته در حالی که فقط در شأن یک نفر یعنی علی است که در حال رکوع انگشتر خود را در راه خدا انفاق کرد چرا در بین دعوا نغ تعیین میکنید اینکه این آیه در شأن چه کسی هست اختلاف وجود دارد بعضی آن را در شعن عبدالله ابن سلام و بعضی آن را در شعن عبادت ابن سامت دانستند. اولا به فرض اینکه در شعن عبدالله یا عباده باشد، باز هم لفظ جمع برای یک نفر به کار رفته. سانین، این را بدانید که جز یک یا دو نفر از علمای متاسبتان، همه علمای بزرگ شما این آیه را در شعن علی ابن میدانند. طالب می‌دانند. اتفاقا یکی از ادله استوار برای اثبات خلافت امیل همین آیه است یعنی چه آقا شما به هر زوری شده میخواهید از این آیه هم برای اثبات حرفتان استفاده کنید در حالی که ولی به معنای محب است، نه به معنای امام اگر سخن شما صحیح باشد پس باید افراد دیگری را هم شامل شود چون سیغه جمع در کلمه ولی و کم را نمی توان بدون دلیل حمله بر مفرد کرد اولا در کلمه ولی کم ولی مفرد است نه جمع و زمیر کم که جمع است مربوط به امت است. آنچه آنچرا که بعضی از علمای متاسب شما مورد اشکال قرار دادهاند کلمات اللزینه و یقیمونه و یعتونه است که جمع می باشد. چنانچه عرض کردم در زبان عرب و عجم گاهی لفظ جم را برای اغراض براغی بر مفرد حمل می کنند البته همان قسمی که شما متذکر شدید از نظر ما نیز مستاق این آیه منحصر در امام علی نیست بلکه یازده امام دیگر نیز مشمول این آیه هستند این را بپذیرید که کلمه ولی در این آیه به معنای ناصر است نه به معنای امام زیرا اگر اینطور که شما میگویید باشد باید علی کرم الله وجههو در زمان حیات پیامبر هم امام باشد حالا که اینطور نبود است؟ چرا؟ اتفاقا همانطور بوده در جریان غزبه تبوک پیامبر آن حضرت را خلیفه خود در مدینه قرار داد و تا پایان عمر شریفش آن حضرت را ازل نکرد. همچنین با توجه به حدیث منزلت ثابت می شود که آن حضرت در زمان حیات و پس از وفات نبی اکرم نیز خلیفه رسول خدا بوده است اگر دقت کنید خواهید دید که به صلاح شما نیست که این آیه را در شعن علی کرم و وجهه بدانید چون این آیه نه تنها اثبات برتری کند بلکه به فضایل دیگر آن حضرت لطمه وارد می کند. اولا اینکه آیه در شعن چه کسی باشد یا نباشد به صلاح دید من و شما نیست ثانیاً می بدانم چگونه این آیه به فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام لطمه میزند. یکی از مقامات عالیه آن حضرت حضور قرد در نماز بوده در تاریخ آمده که در یکی از جنگها تیری به پای ایشان فرو رفته بود که خارج کردن آن بسیار مشکل بوده بنا شد این تیر را در حال نماز از پای آن حضرت خارج کنند زیرا علی در حال نماز قلبن متوجه خداوند بود و ابدا به خود توجه نداشت. حال ببینید، این علی در نماز متوجه ناله فقیر می شود و به او زکات می دهد. در ابتدا به این سال من جواب دهید که اگر امیر مؤمنان در حال نماز باشد و در حضور ایشان یکی از کفار که پیامبر را تنها یافته است، قصد جان پیامبر را بکند، آیا امام علی دست از نماز میکشد و از جان پیامبر دفاع میکند یا به نماز خود ادامه میدهد جواب واضح است آقا باید نمازش را بشکند و از پیامبر دفاع کند احسنت اینکه میگویند علی در نماز متوجه درد پانه می شود به معنای آن است که متوجه خود نیست نه اینکه بیهوش و بیهس شود به ای که متوجه اطراف خودش هم نباشد آن چیزی که به نماز لطمه وارد میکند توجه به غیر خداست نه هر توجهی او در این حالی که نماز میخواند و غرق حضور قلب در محضر رب و پربردار خیشه است حواسش کاملا جمع است او که از اول عمر شریفش تا لحظه شهادت ذره شک و تردید در ایمانش پیدا نشد هرگاه عملی پیش می آمد که رضای خدا در آن بود به خوبی آن را میدید و متوجه آن میشد او در حال رکوع زکات داد و مصداق نور علی نور را پدید آورد. بهترین دلیل بر اینکه این عمل فضیلت است این است که خداوند در این آیه این عمل را مدح فرموده. از این بحث بپردازیم آقا. اگر اجازه بفرمایید از شما گلایه ای داشتم. بفرمایید. شما الان گفتید که علی از اول عمرش تا آخر هیچ شک و تردیدی در ایمانش پیدا نشد. آیا این گفته شما این را نمی‌رساند که بقیه اصحاب در ایمانشان ثابت قدم نبودند؟ اولاً من قصد کرایه‌گویی نداشتم. سانیان اگر این سوال را خصوصی از من می‌پرسیدید بهتر بود. طوری صحبت می‌کنید که انگار یک مطلبی را در نظر دارید ولی نمی‌خواهید بگویید. به شهادت آیات و روایات اغلب صحابه که هنوز به مراتب بالای ایمان نرسیده بودند گاهی اوقات گرفتار شک و تردید می شدند بعضی از آنها که منافقان هستند در این شک باقی بودند اما در مورد برخی دیگر بهتر است جوابش را خودمانی خدمتتان عرض کنم یعنی می خواهید بگویید که خلفا هم شک می کردند؟ شما احساسات را تحریک می کنید حال که است، من هم به شما جواب می دهم به شهادت روایات معتبر، عمر بارها و بارها در نبوت پیامبر اسلام شک می‌کرد. در جریان صلح هدیبیه می‌گوید هرگز در نبوت محمد صلی الله علیه و آله و وسلم شک نکرده بودم، به اندازه شکی که در روز حدیبیه کردم. از این حرف معلوم می شود که او مکررن گرفتار تردید شده. در این هنگام به دلیل گذشتن وقت مجلس، این جلسه خاتمی یافت. در هنگام پذیرایی از مهمانان گفتگوی کوتاهی بین علما و جناب واعظی واقع شد جناب سلطان واعظین من شخصا از دیدن شما بسیار خوشوقت شدم و خیلی مایل بودم که بیشتر از این در محضر شما باشم و از بیانات حضرت عالی استفاده ببرم. اما متاسفانه کارهای مهمی دارم و باید به ناچار به وطن برگردم. اگر افتخار دهید و به منزل ما تشریف بیاورید خیلی خوشحال می‌شویم. ما نمی شما بروید جناب حافظ. کار به جای حساس رسیده و تا مسلب روشن نشود حق ندارید جلسه را ترک کنید. شما علما همیشه به ما میگفتید که رافضی ها برای مذهب و مرام خود هیچ دلیلی ندارند. اگر در مقابل ما قرار گیرند خیلی زود شکست میخورند. اما حالا میبینیم که امر عکس آن چیزی است که ادعا میکردید و این شما هستید که کم آورده اید. اشتباه میکنید. اینکه میبینید ما چیزی نمیگوییم فقط به پاس حرمت و شعونات مهمان محترم است و به همین خاطر تا کنون وارد مباحث اساسی نشده ایم اگر اراده کنیم راحتی حق را به جانب خودمان برمیگردانیم. گردانیم تا کنون که چونین نبوده اگر دلیلی دارید در همین مجلس مطرح کنید چون مذاکرات این جلسه تماما در روزنامه های چاپ می شود و نقل محول جوانان ما شده و بسیاری از آنان را در عقایدشان سوس کرده حتی اگر از کارهای خودم هم سرف نظر کنم دیگر این اجازه را به خودم نمی دهم که مزاحم میهمان محترم باشم زیرا ایشان عازم مشهد هستند و درست نیست موجب زحمت ایشان شوم خیر از طرف من هیچ مانعی نیست اتفاقا خیلی خوشحال هستم که چنین مجلسی برپا شده است تا حق و حقیقت آشکار کردد با وجود اینکه توقف در پیشاور برایم دشوار است این دعوت را میپذیرم بدین این ترتیب جلسات مناظر بین جناب سلطان الواعظین و علمای اهل سنت با اصرار علمای دیگر همچنان ادامه یافت.